وار است زیستن در برزخ آیا ارواح برزخی بیشتر از دوزخیان عذاب نمی‌بینند آنگاه که زمین از برانگیختن خفیف ترین موج شادی در یک قلب بیگانه آجزه است چه نوازشی می‌تواند بیتابی فرار به هر جا که نه اینجاست را اندکی فرو بنشاند و چه دشوار است دیدار چهرهایی پر از عشق و مهربانی و تلاش خستگی ناپذیر فداکارانه برای رام کردن روحی که هجرت را در عمق نهادش به گونه طوفانی دم آدم آسی تر احساس می کند. و من که در برابر مهر و نیکی و صمیمیت همچون مومی ذوب می‌شوم درونم از آنان مالا مال سپاس است اما مرا برای سعادت و آسودگی نساختند آوارگی و سراسیمگی صفتی در من نیست خود من است اصلترین بعد روح من روح من است روح یک وحشی ابو علی در قصیده اینیه مشهورش از کبوتری سخن میگوید که از بام بلند آفرینش فرود آمده است و بر روی خاک در قفصی خود را گرفتار کرده است این کبوتر روح است اما این کبوتر چرا با باران کبوتری که هر روز و هر شب از بام آسمان بر زمین باریدن میگیرند و هر یک در قفسی پناه میبرند، این همه تفاوت دارد شاید این کبوتر نیست نه احساس میکنم در این قفس استخوانی آن که اسیره است کبوتر نیست اگر کبوتر میبود رام و نرم و خاموش بود اگر هم میخواند؟ آهسته و خوش و خوب میخواند. زمزمه آرام و دلکش و مهربان اگر وحشی هم میبود در این سالیان دراز باید انس میگرفت و با قفص این زندگی و باغ و شهر و کوه و در و دشت این ولایت خو کرد و بام آسمان نخستینش را از یاد میبرد مگر کبوترهای وحشی را رام نمی‌کنند، کنند دست آموز و اهلی و پای بند آشیانه نمیشوند نه این کبوتر وحشی نیست یک باز است یک باز وحشی که از قفص و دیوار و سخف و جمعیت حراس دارد و به آبادی و آدمیزاد و حتی نبازش و آشنایی بیگانه است هراس در عمق سرشت و فطرتش خانه کرده است بازی را از دل کوهستانی وحشی و دوردست که گام هیچ انسانی بر آن نرفته و صدای هیچ گذری در آن نپیچیده بگیرید و به خانه آورید و بهترین جای خانه را به او بدهید و بهترین غذاها را برایش فراهم کنید بهترین بسترها را در زیر پایش بگسترید بهترین آبدان را با مهربانی و احتیاط و مهارت پیشش بنهید چراغ برق زیبایی را در قفسش نصب کنید با بهترین و دلچسبترین آتش فضایش را گرم کنید. دورش را بگیرید و هی از خط و خال و طوق زیبا و چشم قشنگ و بال و پرهای رنگین و زیبایش ستایش کنید. جدی و از سر ایمان ستایش کنید و از سر ایمان او را بنوازید. با انگوشت های نرم و مهربانتان سر و پر و پشتش را نوازش کنید. هر روز و هر شب و هر هفته و هر ماه و هر سال و سالها همچنان کنید صبح، ظهر، بعد از ظهر، عصر، غروب، شب، نیمه شب، همه وقت یک لحظه از او غافل نمانید هر چه میدانید، هر چه میتوانید، هر چه به خیالتان میرسد از نباختن و خدمت کردن و مهربان بودن با او دریغ نورزید چه خواهد شد او همچنان سر در زیر بال خواهد کرد، همچنان در سکوت وحشی و خطرناکش، سکوتی که کمینگاه فرار است خواهد ماند، او در چشمهای هموار نگران، در چهره‌های مکرر و مهربان، در نوازشهای صمیمی نوازشگران، در آب و دانه، در حرارت هوای آراسته و زیبای این خانه، در نور چراغ، در صداهای آهسته و پر محبت ستایشگران، در همه چیز و همه کس جز یک چیز نمیبیند. فرار از میان مسلسل کلماتی که دائما به روی هم می کنند. از میان کلماتی که خطها و تابلوها و سفه ها را سیاه کردند، از میان نوازش های ترین و عاشقان ترین جز یک کلمه نمیشنود. فرار هر کلمه ای را او فرار میشنود. هر نوشته ای را او فرار میخواند و از میان انبوه کلمه هایی که در میان انسانها هستند و با انسانها زندگی می‌کنند، از کلمه ای که بیشتر از همه گریختن معنی میدهد ماندن است. تا کلمهای اشارهای کنایه‌ای، ای نشانه ای از ماندن احساس می کند، بالهایش را به شدت و به سراسیمگی از هم می گشاید و سرش را دیوان وار به دیوارها می‌کوبد و بیقرارتر می‌شود. تر چه می کند. و پس از تلاش‌های جنونآمیز جنون بیسمر با پر و بالی شکسته با و ریخته و سر و پای خو آلود و مجروح باز در گوشه ای و سر در زیر پر مینهد و آرام میگیرد و با چشمهایی که از آن کینه و درد میتراود به اندیشه‌های دردناک فرو میرود. همه مهربانی‌ها و ها و, و فداکاری‌ها آزارش میدهد و به چهره‌های باز و متبسم و مهربان همه‌ی آنهایی که شب و روز به او مشغولند به چشم دشمنی مینגרد و چه دشمنی بدی دور از اخلاق و وجدان. دشمنی با کسانی که جز نبازش و دوستی تقصیری ندارند. کسانی که میخواهند او اینجا باشد، بماند، راحت باشد، به او خوش بگذارد. سر حال بیاید، خوشبخت باشد، توی شهر و آبادی و توی خانه گرم و امن باشد، با آنها باشد، آنها قرزی ندارند، نه چشم به گوشتش دارند و نه میخواهند پرش را برای متکاشان بکنند. نه شیر و تخم مرغ و جوجه و ای دارد که شکم هاشان را برایش صابون زده باشند هیچی باز است پلواری که نیست گوسفند و گاو و مرغ خانگی و بوقلمون که نیست باز است از او خوششان می آید واقعا خوششان می مگر مردم برای چه قناری و کفتر نگاه می دارند؟ برای برای است؟ برای گوشت و پر و تخم مرغ آنهاست؟ برای آن است که چاقشان کنند و بکشند یا بفروشند نه مسلما نه برای آن است که فقط از آنها خوششان میآید از دیدارشان لذت میبرند و الفت می میبندند سرگرمی خوبی است دوستی خوبی است به زندگی معنی و گرمی و حالت میدهد اینها هم باز نگه داشتند، فقط برای همین همه این ستایش ها و نوازشها و فداکاری ها صمیمانه است و انسانی و از روی پاکترین احساس ها پاکتر از هرچه به تصور آید اما این باز همچنان در کمین فرار خاموش نشسته نمی جوشد سپاسگزار نیست حق نیست مهربانی و فداکاری را با سردی و تفاوتی جواب میدهد حتی اخم هم دارد مثل اینکه آزارش میدهند. چه جانوری است وحشی وحشی وحشی برای تو همان صحراها و شکاف ها و در و دشتهای بیکس و هولناک خوب است که از طوفان‌ها شلاق خوری از بادها تازیانه خوری در پیچ و خم ابرها گم و سرگردان شوی در تیر تیررس شکارچیان یک لحظه آرام نباشی زمستان ها و خزانها و آوارگی ها و تنهایی ها و سختی ها همه در تعقیبت باشند تا گوشه بیفتی و تنهای تنها بمیری و دلی و چشمی مرگ تو را خبردار نشود از گورت هم نشانهی نباشد خاک شوی و به باد روی و هیچ هیچ اما این باز چه کند؟ باز است، اهلی نمی او را خانگی نساختند نمیتواند خانگی شود با آنها که هم جنس او نیستند اهلی هستند خون نمیتواند بگیرد نه که نمیخواهد خیلی هم میخواهد آرزو دارد چه تصمیم ها و چه فریب ها و چه تمرین ها و تلقین ها کرده که خانگی بشود نمیتواند هر وقت یاد آسمان و اوج باز و بلند آسمان و قله بی کس و سخت و مقرور کوهستان و دم زدن در نفس پاک و بکر سحر و پریدن در افقهای مبهم و لود مغرب و گم شدن در قلب آسمان و پنهان ماندن در سینه مغرور کوها و صخره در خاطرش موج میزند زند همه چیز در پیرامونش سرچشمه رنج و کینه و دشمنی می شود نوازشها، آزار و ستایش ها، دشنام و مهربانی ها، و خدمت ها، خیانت و آشنایی زهر و زهر و زهر می شود هر نگاهی، نگاه ستایش آمیزی، نیشتری می شود که در مغز استخوانش فرو میبرند. هر نازی، زنجیری می شود که برپایش می نهند هر دست نوازشگری پنجهی می شود که حلقومش را می فشرد چقدر تعمیل یک زندگی بی درد بر یک روح دردمند زجرآور است. دنگیزه است روح آدمی در آن هنگام که از ابتضال روزمرگی فراتر می رود و در اوج می پرد. آنجا که آدم و کوچه ها و اداره ها و خانه ها را نمی بیند رنگ ها عوض می شوند و جریان باد ها و سیمای افخ و آسمان حتی خورشید حتی ابرها هواپیما نشستید. در آن لحظه که در زیر پایش فرش سپید ابرها گسترده است و زمین را کتمان میکند. کشتی نشسته اید در آن هنگام که جهان دیگر یک خرازی، یک چهارشنبه بازار نیست، یک دست و پاک است. آبست و آسمان و دیگر هیچ. عالم خاکی فراموش می شود و نیز همه آنها که از این خاک برمیآیند و چندی بر روی آن می خزند که یعنی زندگی و سپس به خاک فرو می و باز, و باز از سر و باز از سر و باز از سر و همین می تاریخ مکرر و خنک تاریخش این است وای به حال ادبیاتش شعرش عشقش و هارت و پورتهایش و باد و بروتهایش و زیبایی ها و سربتها و خوشبختیهایش چقدر دریا زیباست شسته است اصلا شستگی است چقدر تهارت و قدس و اطمینان و صداقت و یکدستی و استواری و بیکرانگی. باز، بی دیوار، بی قید، بی باید، بی با هر آلودگی، ناساز با هر قبار. گویی آستانه آن دنیای دیگر است، مرز عالم ملکوت است، مرز بین خداست. آنجا؟ همه چیز پاک است و بیشاعبه است و سریع است چرا دریا بیرنگ است؟ چرا دریا لباس را تحمل نمی کند؟ چرا خاک را تحمل نمی کند؟ چرا آرایش ها در دریا همه پاک می شود و زدوده؟ جهان بیرنگی است خود بسیط است و سمیمی است و آشکار و بیرنگ و یکده چه سکوت پرعظمتی چه آرامش پر اقتدار و مردانهی جبروت چه بیچارگیست زیستن در اینجا که ما ایم. شهر و از این توده متراکم نفسها و بخارها و رنگها و بزکها و احوال پرسیها و ها و خوشیهای متعفن که میگریزیم، باز می به کویر خاک و شن و قبار بیشتر در زمین فرو می رویم. بیشتر به خاک نزدیک می‌شویم، از کبیر به شهر پناه آوردن و از شهر به کبیر گریختن و این است سرسام زندگی احمق و رقتبار ما که باید تحملش کنیم و میان این دو یک چند آوارگی کنیم و سپس بمیریم و باز قبرستان زیر خاک و بالا خاک و پشت خاک و پهلو خاک و سینه پر از خاک و چشم و گوش پر از خاک و سپس خاک خاک و دیگر هیچ کاش اقلا در دریا می مردیم. کاش به جای تابوت و کفن و دفن و کافور و قبر و لحد هرگاه که مرگ به سراغ ما می آمد نزدیکان نه دوستانمان ما را بر قایقی می و بر دریا می انداختند و به دست موج می سپردند تا ما را به شتاب از ساحل از خشکی و آدمهای خشک خشکی دور کند و لغزان بر سینه موج تا قلب دریا برد تا در آنجا آنجا که آسمان از هر سو بر دریا فرود می آید و جهانی دیگر می تنهای تنها مرگ را دیدار می کردیم. ساکت و زیبا و آرام بی شیون و نوه و زاری و قیل و قالهای راستین و دروغین از و تشیی کنندگان و مراسم قسل و کفن و دفن و سرخاک و تعذیه و شب هفت و لباس سیاه و گذاشتن ریش و غیره و غیره که همه دست در دست هم دادند تا مردن را زشت کند و تنها حادثه سمیمی و صادق و جدی و پاک و عظیم حیات ما را بر روی این زمین بیالایند و با پسترین تصنعها و پیرایهای قلیز و منفور زندگی درآمیزند. چه میخواستم بگویم؟ یادم رفت ها گفتم چه شگفتانگیز است روح سخن از روح بود این میهمان آن جهان شگفت ماورایی در این خاکدان فقیر و آلوده به حیات و پلیدیهایش راست میگویند عارفان که روح در این زندان تن اسیر است و در این کشور جهان قریب اما بدان عادت کرده است نژاد و تبار بزرگش را از یاد برده است و نه تنها آقایی و بزرگواری اصل و نسبش و پاکی و علو نهاد و سرشتش را فراموش کرده است که نوکر پست و متملق بدن شده است این کیسه مملو فضولات این که هنرش تنها تولید کودست و کودساز و دیگر هیچ روح پادوی چاپلوس و غلام حلقه به گوش بدن می شود و همچون سگ شهری در کوچه ها و خرابه ها و مزبلها به شادی و هرس پرسه می زند و پیش این و آن به تمه لقمه نانی و به آرزوی تکه استخانی دم می جنباند و همین را فعالیت و عقل و پیشرفت و خوشبختی و برخورداری و زندگی نام می کند و خوش است و راضی و راحت روح این پرتو ملکوتی، دم اهورایی، نفخه روح خداوندی چنین می شود و بس که در این زندگی زندانی می شود و میماند ماند بدان چنان خو می کند و به رنگ خاک می شود که از احتمال صدور ابلاغ یک رتبه، تبدیل پایی آموزگاری به دبیری اصابت زمینی در حاشیه ریاست بر چند آجز عیالوار آبگوش پرست از کت و شلوار، دامن و کیف، قبه و عینک و قبقب و ماشین پیشوند استاد و دکتر و حاجی و سرهنگ و کربلایی و مدیر کل و تیمسار و مشهدی و خان غرق نعمت و لذت و توفیق می شود و میخواهد از شکر و رضایت بترکد البته آدم ها همه در یک ساعت نیستند و از هم فاصله دارند اما همه از یک جنسند هر که در این حیات در زیر این آسمان از چیزی به شعفایت از بلاحت جانوری و گیاهی برخوردار است نمیدانم چرا در هر شعفی هر خنده قاهقاهی، هر بشکنی هر احساس خوشی موجی از حماقت قلیظ منفور و زشت پدیدار است نمیدانم های خوش و فربه چرا در چشم من تا حد استفراغ و قبیه و چندش آورند. نمی دانم و چندشاورد چه تجانسی است میان چربی و حماقت نه یک حماقت ساده بیگناه گناه بی سفت، همچون حماقت یک نوکر یک خول یک بیابانی نیمه وحشی بلکه حماقت تهب و آور و آزاردهنده و خفه کننده یک قیافه تر و تمیز و خوشاب و رنگ یک نیمه فکر و نیمه تحصیل کرده متمدن پر ادعای از خودرازی حماقت یک استاد، یک اهل اداره، یک دبیر، یک زبان خارج دان همه این قیافه‌های های بشاش ادو کلانزده امیدوار مطمئن سیر و پر و خوشحال و موفق که با دومشان گردو می و همه چیز برایشان روشن است و همه مشکلات حل و همه رنجها و دردها شفای یافته، تندرست و با حرارت و کار و بارشان سکه به به به خدا را شکر خانه نیجاره ملکی خودشان ساختند و آقای مهندس نقشش را داده و خانواده از یک فامیل محترم اسم رسم دار و حقوقی و رتبه و ماشینی و یک دو پارچه زمینی و خب خدا بخواهد میخواهند سال دیگر برای گردش بروند خارج الحمدلله خیلی خوب شد کی کمان میکرد؟ خدا یک جو شانس بدهد چه سعادتی؟ واقعا هم خدا یک جو شانس بدهد چه شانسی؟ خریت اوه که چه است؟ چه, چه سرمایهای است خوشبختی هرکس به میزان برخورداری او از این نعمت عزماست و بس این است تنها راز سعادت آدمی در حیات و بقیهاش همه حرف است و فلسفه بافی است بیچاره آنهایی که این چیزها سیرشان نمیکند چیزهای دیگری میخواهند از آب لوله عتششان فرو نمینشیند از خوراک آشپزخانه اشان سیر نمیگردد دوخت و رنگ قالی و اتاق و میز و حتی حقوق هم با همان اضافاتش و با همان امیدواریهایی که همیشه در نزول یک رتبه عقب مانده است و با اینکه دعاها و تذرعها و نالها و تملقها و سپاسها و ستایشها و تلگراف ها و تومار ها و خم شدن ها و هیچ وقت راست نشدن ها نزول آن را تسریع و ظهور آن را تعجیل می کند دلهای خیال پرداز آنان را از شکر و شعف مالا مال نمی کند و از طرفی در زیر این آسمان بر روی این خاک در این زندگی و میان این خلایق جز همینها چیزی نیست طبیعت جز همینها چیزی ندارد تشنه آب لوله آب حوض، آب سماور. گرسنه‌ای، دیگ، هر کار دیزی. خسته‌ای، رختخواب، متکا، تخت، دیوان. افسرده‌ای، رادیو، تلویزیون، سینما. دمگینی، شوخی، متلک، بازی، تفریح، فیلم کمدی، صفحه، برنامه بخند تا دنیا برویت بخندد رادیو تهران. تنهایی، مهمانی. دعوت، جلسه، شبنشینی، دید و بازدید، احوالپرسی بیماری، دوا، دکتر، مریضخانه تنقیه، قرص، دردمندی، آسپرین، کیسه آبگر، ماساژ آشقی، اصلاح و بزک و لباس و دم مدرسه ها و کنار خیابان ها و تلفن و متلک و بویفرند و گیرفرند و خواستگاری و قباله و جهاز و دعوت و عروسی و صف ماشین و تاکسی و بوغ و بوغ و دور حرم و کوسنگی و خانه و بچه و قسط و جلوس و آه عزیزم و دیگر ناز و مربوطه طبق ترتیبات داده شده در امور مربوط به سعادت خانوادگی و دستورات تدوین شده برای بهره برداری از یک زندگی سعادتمندانه. پس چه می‌گردی؟ دنبال چه میگردی؟ نمیدانیم اما میدانیم که اینها ما را بس نیست. نمی‌گوییم اصلاً به کارمان نمیآید اما کفایت نمی کند و درد از همینجا آغاز می شود. درد بی درمان و قمهای ناپیدایی که از عمق روح می جوشد و استرابها که درون را به تلاتمهای وحشی و طاقت فرسا مبتلا می کند. و طوفانی که در اندرون برپا می شود و افق زندگی و جهان را در پیش چشمان تیره می دارد و پریشانی و بدبختی آغاز می شود و هرگز به سامان نمی رسد. نیازهای بلند ما را همواره بیتاب میدارند و آنچه هست پست است عشقهای مقدس در جان ما شعله میکشند و آنچه هست آلوده است زیباییها ما را مدام در حسرت خویش میگذازند و آنچه هست زشت است آنچه هست خوب نیست پاک نیست منزه نیست جاوید نیست صمیمیت ندارد عظمت ندارد هرچه هست برای مصلحتی است هر که هست به خاطر منفعتی است. هیچ چیز به خودش نمیارزد. هیچ کس به خودش چیزی نیست. همه چیز را و همه کس را برای سودی و فااد گذاشتند در اینجا هر چیزی مأموریتی دارد. حتی عالیترین و گرامی ترین عزیزها و مقدسها مأمورند. مقدمه اند برای مصلحتی دوستی برای چیست دوستی الفتی است که طبیعت یا خدا در دلها نهاده است تا به آن وسیله مردم را به تعاون و همکاری و همگامی در امور زندگانی وادار سازد عشق برای چیست عشق چیزی است مثل سرخک که بچه های گنده میگیرند و آنان را به تشکیل خانواده میکشاند تا طبیعت کارش بگذرد و ادامه نسل نوع بشر نکسلد و آنچرا مرگ می‌برد عشق بر جای آورد پس عشق در اینجا مأمور تولید نسل است و تاوانده مرگ همین نیست چرا اما دل ما را چون این عشقی و چنان دوستی سیراب نمی‌کند روح ما تشنه دوستی دیگر و عشقی دیگر است عشقی که نمأمورتن است و مقدمه و یکی از نوامیس طبیعت از قبیل گرسنگی و خستگی و تشنگی و غریزه جنسی و حب جاه و سیانت ذات و نو دوستی و دلسوزی و غیره که همه را بر انسان تحمیل کردند تا کار زندگی کردند بر روی این زمین راست گردد و امور طبیعت اداره شود. چه سخت و قمنگیز است سرنوشت کسی که طبیعت نمیتواند سرش را کلاه بگذارد چه تلخ است میوه درخت بینایی